کبوتر جهانگرد روزی بود و روزگاری بود در صحرایی که چاه‌های قنات آب زیاد بود و کبوتران چاهی در سوراخ‌های بالای چاه آشیانه داشتند دو بچه کبوتر بودند که با هم خیلی رفیق بودند شبها در لانه قصه میگفتند. صبحها با هم آواز می‌خواندند، روزها در صحرا دانه میجستند و با سایر همسایه ها بازی و پرواز می‌کردند و زندگی خوش و خره می‌داشتند. نام یکی از آنها بازنده و نام دیگری نوازنده بود. یک روز که در صحرا مشغول پرواز و بازی بودند، بازنده کوه سرسبزی را که از دور پیدا بود به نوازنده نشان داد و گفت: بیا برویم ببینیم آنجا چه خبر است. نوازنده گفت نداداش راهش خیلی دور است و رفتن ما به آنجا صلاح نیست و هر جا برویم نمیتوانیم از اینجا خوشتر باشیم تازه ممکن است آنجا شکارچی و دشمن و خطر هم داشته باشد بازنده گفت اوه تو چقدر میترسی پس خبر نداری که من تصمیم گرفتم بروم دنیا را بگردم و از همه چیز و همه جا باخبر شوم. راستش این است که این زندگی یک نواخ زندگی نیست نوازنده جواب داد عزیز من دنیا همه جایش یک جور است و به قول شاعر به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است ما اینجا خانه داریم، آسایش داریم، نان و آب خدا داده است، آزادی و امنیت داریم، در میان سر و همسر آبرو و اعتبار داریم، هزار تا دوست و رفیق داریم و زندگی خوب داریم، چرا برویم به جایی که غریب باشیم و بی سر و سامان باشیم و هیچ کس ما را هیچ حساب نکند و به بازی نگیرد؟ بازنده گفت: نه، من شنیدم که مسافرت خیلی فایده دارد و شخص در قربت تجربه میآموزد و همه بزرگان دنیا از سفر کردن و دنیا دیدن ستایش کردند و اگر اینجا که ما هستیم خوب بود باز و عقاب و تابوس هم میآمدند، میآمدند اینجا می میماندند. نوازنده گفت: عجب حرفای بزرگ میزنی سفر برای باز شکاری و اسب سواری خوب است. نه برای کبوتر چاهی و مرغ خانگی؟ اگر نمیدانی بدان اگر کسی قدر آنچه را دارد نشناسد و به تمع چیزهای مجهول از وطن آوار شود و دنبال بیگانگان برود پشیمان میشود من میدانم که دیدار دوستان چه لذتی دارد و دوری یاران و دوستان بدترین دردها و سختترین رنج هاست بازنده جواب داد این حرفها به گوش من فرو نمی روید دنیا بزرگ است و دوست و رفیق تمام نشودنی است اگر امروز از یکی دور شدیم فردا با دیگری رفیق می شویم و رنج و سفر هم ترس ندارد چرا که عادت می شود و غم غربت هم به تماشای جهان می ارزد نوازنده جواب داد اشتباه نکن که عمرها کوتاه است و اگر شخص بخواهد هر روز رفیق تازه ای بگیرد و جای تازه ای پیدا کند تا با هم آشنا شوند و خوبی آنجا را بشناسد عمرشان به آزمایش این آن می و آن میگذرد و بهرهای از خوشی نمیبرند و بهترین دوست دوست قدیمی است و بهترین زندگی زندگی در وطن است بازنده جواب داد خواهش می کنم برای من از این فلسفه ها نباف چرا که من تصمیم خودم را گرفتم و از قصد خود بر نمیکردم. به عقیده من دنیا دیدن بهتر از دنیا خوردن است و من از همین حالا می روم دیگران در دنیا چطور زندگی می کنند من هم یکیش نوازنده گفت حالا که حرف حسابی سرت نمی شود بیش از این گفتگو فایده ندارد معلوم می شود تو هم از جنس آن آدمها هستی که تا خودشان در زندگی سرشان به سنگ نخورد نصیحت هیچ کس را نمی شروند. پس خود دانی اما اگر از دیگران جفا دیدی باز هم من در دوستی وفادارم و هر وقت از کار خود پشیمان شدی برگرد. پس با هم ودا کردند. و نوازنده به امید دار گفت و به خانه رفت و بازنده پرابال زنان و شادی کنان به کوه سار سرسبزی که از دور پیدا بود پرواز کرد. از تماشای درخت ها و بیابان ها خوشحال بود و میرفت تا به کشتزاری در دامنه کوه رسید که درخت ها و گل ها و سبزه هایی داشت و آب و هوایش بسیار با صفا بود. و چون آخر روز بود همانجا را پسندید و بر شاخی درخت بلندی نشست و با خود گفت آخیش چه خوش است منزل داشتن بر شاخ درخت و تماشا کردن گلها و سبزه ها و جویبار ها و دیدن ستارگان درخشان آسمان در تاریکی شب پق پق پقو پق پق پقو پق خورشید کم کم قروب می کرد و هنوز کبوتر بازنده از خستگی دور و دراز خود در نیامده بود که هوا از ابر پوشیده شد و باد و طوفان سختی شروع شد و رد و برق و باران تندی در گرفت البته دیگر شاخه درخت جای آرام و قرار نبود اما بازنده هرچه نگاه کرد هیچ پناهگاهی به نظرش نرسید تا از باد و باران و سرما به آنجا پناه ببرد آخر خود را به زیر شاخ و برگ درخت گل سرخی کشید و تا صبح از سرما و رطوبت هوا لرزید گاهی با خود می میگفت چه بد کردم که تنها به این محل ناشناس آمدم و سخن دوست وفاکیش خود را نشنیدم ولی دوباره به خودش جواب میداد که همیشه هوا اینطور نمیماند و هرچه باشد میگذرد و اگر قرار باشد با یک ناراحتی از میدان در بروم و روحیه خود را ببازم هرگز به جایی نخواهم رسید و باید صبر و استقامت داشته باشم به هر حال شب را با هزار زحمت و رنج و بیخوابی به صبح رسانید صبح که هوا صاف شد و آفتاب دشت و کوه را روشن ساخت بازنده باز بر شاخه درخت قرار گرفت و از صفای هوا لذت می برد اما چون مرغ هایی را که در آنجا در پرواز بودند نمی شناخت و زبانشان را نمی فهمید از تنهایی دلش گرفته بود و هرچه می خواست آواز بخواند خواندنش نمی آمد و داشت فکر می کرد که آیا بهتر نیست به خانه برگردم؟ دوباره می گفت حالا که قصد کردم چند روزی دور دنیا گردش کنم، گردش می کنم. او هنوز در این فکر بود که دید یک شاهین قوی پنجه به طرف او میآید و قصد گرفتن او را دارد. از دیدن دشمن دلش به تپش افتاد و از اینکه هنوز از سرمایه شب گذشته راحت نشده گرفتاری دیگری برایش پیش آمده سخت وحشت کرد و ناگهان به یاد نوازنده افتاد و در دل خود عهد کرد که اگر از شر این شاهین نجات یافت دیگر فکر جهانگردی را کنار بگذارد و نزد یار وفادار خود برگردد در همین حال که داشت نظر رو نیاز می کرد یک دفعه از طرف دیگر یک عقاب تیز چنگال را دید که او هم داشت به سویش میآمد بازنده که دید دشمن دوتا شد از ترس دست و پایش و عقلش نمی رسید که چه کار کند باری اقاب زودتر از شاهین نزدیک شاخه کبوتر رسید و چند بار دور آن درخت پرواز کرد گویا اول با خود میگفت این کبوتر ضعیف لقمه کوچکی است و لیاقت مرا ندارد و به خود جواب میداد هرچه باشد برای سبحان هم کافی است آن وقت اقاب به قصد گرفتن کبوتر پیش آمد اما همین که چنگار خود را دراز کرد از آن طرف شاهین هم با اجل رسید و خواست کبوتر را زودتر از اقاب به آورد اغاب که خود را بزرگ پرندگان می دانست از این بی احترامی شاهین خشمین شد و به شاهین گفت اگر یک قدم جلوتر آمدی پوست از سرت می کرم. شاهین جواب داد بخواد عصبانی نشو این کبوتر حق من است و اول من او را دیدم در این حال هر دو مرق شکاری سینه به سینه هم برخوردند و با نیش و چنگال به جان هم افتادند و شروع به زد و خورد کردند بازنده که این حال را دید فکر کرد وقتی دشمنان با هم می جنگن موقع آزادی دوستان است و خدا را یاد کرد و خود را از بالای درخت به زیر انداخت و رفت در سوراخ تنگ و تاریکی که زیر سنگ بود پنهان شد در آنجا از تنگی جا داشت خفه می شد اما از ترس اقاب و شاهین دیگر جرأت نکرد بیرون بیاید و همانجا ماند تا شب شد شب هم همانجا ماند و با وجود گرسنگی و تشنگی همش به یاد دوست خود نوازنده بود و از دوری او قمگین بود صبح وقتی هوا روشن شد و بازنده دید صدا و ندایی نمی آهسته آهسته از سوراخ بیرون آمد و ترسان و لرزان پروباری زد و در صحرا به جستجوی قضابران در حالی که پرواز می کرد در پای تپهی کبوتر چاق و چلده ای را دید که روی زمین نشسته است و خوب که نگاه کرد دید اطراف او هم قدری برنج و ارزندیده می شد بازنده که خیلی گرسنه بود و حالا بعد از یک روز و دو شب خوراک پیدا کرده بود راست به زمین فرود آمد و نزدیک آن کبوتر نشست و چون هیچ فکری جز سیر کردن شکم نداشت شروع کرد به دانه برچیدن و حالا نخور و کی بخور. اما هنوز دانه اول به چین دانش نرسیده بود که فهمید اینجا دام شکار بوده و دست و پایش در تله گیر کرده است بازنده رو به آن کبوتر کرد و گفت ای برادر ما از جنس یک و من از دیدن تو که مثل خودم بودی گول خوردم و به دام افتادم شرط انصاف این بود که زودتر مرا خبردار کنی تا من در دام نیفتم و من که مهمان تو بودم چرا حقیقت را به من نگفتی کبوتر جواب داد به چهار دلیل حرف نزدم. اول اینکه درست است که من از جنس تو ام اما من دارم از این راه نان میخورم زیرا شکارچی مرا نگاه داشته و به من آب و دانه می دهد و هر روز مرا توی دام میگذرد تا تو و امثال تو به هوای همجنسی من گول بخورید و در دام بیافتید و اگر من این فایده را برایش نداشته باشم مرا به سیخ کباب خواهد کشید دو اینکه خداوند دو تا چشم بینا توی کلت گذاشته که آن را باز کنی و راه و چاه را بشناسی خوب بود از اول که دانه را دیدی فکر دام را هم بکنی و اگر عقل داشتی فکر می کردی که اینجا مزرعه برنج نیست و هر جا که خوراک رایگان برای کسی آماده میکنند قرازی هم در کارشان است و بیخود کسی برای جناب عالی دانه رایگان نمیپاشد. سه اینکه من تنها بودم و در عالم بدبختی خود رفیق نداشتم. میخواستم تو هم به طلبی بیفتی تا دست کم مدت کوتاهی همدرد داشته باشم. مگر نمیدانی کسانی که خودشان گمراه شدند و به بدبختی و بیچارگی افتادند دلشان میخواهد همه مثل آنها باشند تا کسی آنها را سرزنش نکند؟ چهار این که من تو را به خوردن دانه دعوت نکرده بودم که میهمان من باشی تقصیر از خودت است که عجله کردی و از من نپرسیدی که این دانه ها مالکی است. حالا اینجا باش تا عقلت به کار بیفتد و بعد از این حساب همه چیز را بکنی و فقط به فکر خورد و خوراک نباشی بازنده کلید حرفای کبوتر جواب ندارد گفت بسیار خوب از این پندهای تو متشکرم حالا از راه لطف و مرحمت آیا میتوانی راه فراری به من نشان بدهی تا بعد از این نصیحتهای تو را به کار برم و تا عمر دارم دعاگوی تو باشم کبوتر گفت عجب کفتر ساده و حالوی هستی نادان. اگه راه فراری بلد بودم اول خودم فرار میکردم اینها کار بخت و قسمت و خواست خداست و چاره ندارد و حال تو درست به حال آن بچه شطر می ماند که در قطار شطورها به مادرش میگفت: مادرجان مادر جان من از راه رفتن خسته شده ام کمی بنشینیم تا خستگی در کنم و مادرش جواب داد اگر اختیار در دست من بود خودم را هم از بار کشیدن نجات می دادم. اما حالا سر رشه در دست دیگری است بازنده از حرفهای کبوتر غریبه فهمید که از او بوی خیری نمیآید ولی با خود گفت با همه اینها ناامید نباید شد و بیکار نباید نشست و تقصیر را به گردن اقبال و بخت و خواست خدا نباید گذاشت خدا که درد داده دوا هم داده و هر نوع گرفتاری هم راه چاره ای دارد بعد با خود فکری کرد و با نوک خود رشته دام را ریش ریش کرد و ناگهان با قوت و زور هرچه تمامتر پرواز کرد اتفاقا رشته دام هم پوسیده بود و پاره شد و بار دیگر بازنده آزادی خود را به دست آورد و با خود گفت اگر کوشش نکرده بودم و گفته بودم خواست خداست و کار بخت و قسمت است من هم در دام مانده بودم بعد؟ با سعی بسیار رو به وطن نهاد و غم گرستگی را فراموش کرد و آمد و آمد تا در میان راه به کشتزاری رسید و برای رفع خستگی بر لب دیوار خرابه این نشست و فکر کرد اینجا دیگر آبادی است و مرغهای وحشی نیستند و بیخیال به تماشای کشتزار مشغول شد در این وقت کودک روستایی که از پشت دیوار میگذشت چشمش به کبوتر افتاد و سنگریزهای در تیر و کمان لاستیکی گذاشت و به طرف کبوتر نشانه گرفت سنگریزه آمد به پهلوی بازنده خورد و بازنده از بالای دیوار سرنگون شد و در چاهی که در پای دیوار بود افتاد کودک دید که نمیتواند کبوتر را از چاه بیرون بیاورد راه خود را گرفت و رفت بازنده که به زندگی در چاه عادت داشت یک شبانه روز دیگر در آن چاه ماند از درد پهلو مینالید و با خود می گفت سزای من که پند دوست را نشنیدم و تنها در راهی که نشناخته و نسنجیده بود رفتم بدتر از این است کسی که قصد سفر می کند باید نخست آنجا را بشناسد و شرایط زندگی در محل جدید را به خوبی فراهم کرده باشد باز خوب است که از هر غمی به نوعی رهایی یافتم باری روز بعد که درد پهلویش کمی آرام شد با زحمت بسیار خود را به لب چاه رساند و با شادمانی رو به وطن خود ره سپار شد نزدیک ظهر بود که به خانه رسید و نوازنده چون صدای پر و بال آشنا شنید بیرون دوید و یکدیگر را در آغوش گرفتند و کبوتران دیگر هم همه جمع شدند و از دیدار دوستان شادی کردند چون نوازنده بازنده را خسته و ناتوان دید سرگذشت او را پرسید و بازنده جواب داد شنیده بودم که از جهانگردی فایده بسیار و تجربه بیشمار به دست می آید و خیال می دنیای دیگران از دنیای ما بهتر است حالا این تجربه را یافتم که گرچه دنیا جاهای دیدنی بسیار دارد اما خوشی و آسایش در دیدار خیشان و دوستان همدل و همزبان است و تازه بعد از این جهانگردی است که قدر وطن و خوبی های آن شناخته می شود